مصادر افعال ربعیه مصدر افعال چار حرفی اکرام تضبیف اکرامن منظور از چار حرفی نه این که مجرد منظور این که حرف داشته باشه ببینید در درس اول خوندیم مصادری که ماضیشون چند حرف داشت سه تا حرف داشت اینجا میخونیم اون افعالی که ماضیشون چار حرف داره چند حرف داره فرقی نمیکنه چه حروف اصلی باشن چه اضافی باشن مهم اینه که حرفا چند تا باشن 4 تا باشن الان داره مصدراش رو توضیح میده امثله گروه اول اکرمت بیتا اکرامه ارشد الناس ارشد تو الناس ارشادا حدت الولد تهذیبا رتبت الاساسا ترتیبا سی جادل تو جدالا او مجادله سابقت سباقا أو مصابكة دحرجت الكرة دحرجة بعثرت الورقة بعثرة وسوس الحلي وسوس الحلي وسوسة أو وسواسة زلزلة الأرض زلزلة أو زلزالة اینجا کار آسان هست در قسمت افعال چار حرفی اونایی که ماضیشون چار حرف داره ساده هست چون مصدرها قیاسی هست مصدرها دیگه سمائی نیستن بلکه چه هستن؟ قیاسی هستن قاعده سد و هفتم دیگه بیونید همینو میگه مصادر الافعال ربعیتی قیاسیتون مسادر افعال چهار حرفی ببینیم منظور از ربایی فعل ربایی رو، نیست که در مقابل سلاسی میاد منظور از ربایی در این در یعنی اولای که مازیشون چند حرف داره حالا چه اصلش سلاسی،, سلاسی مزید باشه چه ربایی باشه ربایی مجرد هر دوتا شون چار حرفی میتونن داشته باشن خب مصادر الأفعال الربائيتي، قياسية وتختلف اوزانها أوزانها باختلاف سيغي الأفعال مختلف هست وزنها هل شون؟ باتوجب فعل فإن كان فعلوا على وزن أفعاله خب نيجي أدارد فعل بر أفعال باشي باب إفعال ديجي ومغبترش بر وزن إفعال هست أكرمه، ماسترش مشي إكرام أحسنه، ماسترش مشي إحسان اخرجه مسترش میشه اخراج فس این ها قیاسی هستند و امکانه علا وزن فعاله فمسدره علا تفیل. هر فعل ماضی که بر وزن فعاله بود مطمئنن مسترش بر وزن تفعیل است. مانند کرمه مسترش میشه تکریم مانند خرجه مسدرش میشه تخریج مانند شدده مسدرش میشه تشتید متوجه شدید؟ اینا دیگه صادعند و امکانه على وزن فاعله ف مصدر و على او مفاعله اینجا مفاعله به خاطر اینکه اتش بر هست و زمانی که بر وزن ماضی فاعله باشه بر وزن فاعله باشه مانند قاتله مانند جاهده مانند سابقه مانند باعده در این صورت مصدرش دو مصدر داره که آلن فعال مفاعلتا فآلن و فآلن و مفاعلتا مانند سابقہ مصدرش میشه چی سباقا مسابقه ناصر نصارو مناصرتا و این کان علی وزن فعللا اگر بر وزن فعلالة باشه ربائي مجرد فمصدره على وزن فعلالتن مصدرش في الموقع بر وزن فعلالتن باشد إلا إذا كان مضاعفا مگر زمانك مضاعف باشه مگر زمانی چه باشه مضاعف باشه فيجوز مصدره فیجوزو فی في مسترهی فعلالون ایزن اون موقع مصدرشو میتونیم بروازه فعلال کنیم مانند دو مثالی که آورده بود امثله شماره پنج ببینید در دحراج و بعثاره امثله گروه پنج و مچارم دقت کنید امثله گروه چارم مستر و آورده دحراج تلکورت دحراجتن بروازه فعلالتن چون این رضایی مجرد هست ولی مضاقف نیست دو تا حرف همجلس درش نداریم ولی در وسوسه که دو تا واب داره دو تا سین میتونیم بر وزن چی مسترش کنیم؟ بر وزن خیلال بر وزن چی؟ خیلال معنیم در وسوسه ویسواس زلزله زلزل عس عس عس عس, عس. بتوجه شدید؟ بس اگر رباعی ماه ربایی مجرد با مضاعف بود بر وزن فعلال میتونیم ولی اگر مضاعف نبود بر وزن فعلتن هست ماننده دحرجا دحرجتان راخرا واخرا دحرجان مضاعف نداره چی مضاعفش دحرج خب نه تب کن شما یه سوالی پرسیدی این سوال اصلا از یک افتدای همگاهن خب البته زهنگاه موقع هر گونه میرود یعنی ولی منظور یعنی کلمه که مضاعف مثلا نیشه گفت مضاعف دارد یا ندارد خب میدونی چیه مضاعف اونیه که دو تا از حرفای اصلیش همجنس باشه خب بریم دولتا کدوم شماره چند کدوم میگه اگر مضاعف باشه بر وزن فعلال مس میاد؟ مثل وسط وسط مزافه دوتا واو داره دو تا مگه مزافف درریف چیه؟ دوتاه هم جنس داشته باشه. مثل مده دوتا دال داره و دو دوتا چی داره؟ دو تا سین داره دوتا واو داره بیچاره این از افل مزاعف هست که بیچاره. بله. بله. اینجا اون موقع جایز است. ما میتونیم بگیم وسوستهن، میتونیم بگیم که وسواس. خب بیایید به مصدر افعال خماسی و سداسی